افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه ها رنگین کمانین که ذهن و اندیشه اقوام مختلف رو به مخاطب نشون میدن افسانه روایت داستانیه که هیچ نویسندهی نداره و خالق اون مردمانی هستن که طی سالها تونستن روایت اونو کامل کنن و سینه به سینه به نسل‌های بعد انتقال بدن افسانه های ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیستند و جنبه های از فرهنگ، تمدن و آداب و سنن ایرانی رو روایت می کنند. فرهنگ کهن ایرانی با گستره جغرافیایی شگفتانگیز و تنوع دلنشین اقوام مختلف، شرایط مطلوبی رو برای روایت افسانه های مختلف آماده کرده. به همین دلیلم افسانه های ایرانی تنوع و گونه های مختلفی دارند. در این برنامه میخوایم یکی از افسانه‌های ایرانی رو براتون روایت کنیم به نام پریدخت گمشده گم شده که از کتاب افسانه‌های ایرانی تعلیف محمد قاسم زاده اقتباس شده. اگه همچنان ما رو با برنامه افسون افسانه همراهی می‌کنین، شما رو به شنیدن افسانه پریدخت گمشده گم شده دعوت می‌کنم. تا پیش در سرزمینی دور پادشاهی زندگی میکرد که دختری زیبا و مهرمان به نام پریدخت داشت پادشاه به پریدخت علاقه زیادی داشت به همین دلیلم خیلی به اون اجازه نمیداد که از قصر دور بشه تا اینکه یه روز پریدخت تصمیم گرفت همراه دوتا از کنیزانش به گردش و سوارکاری بره به با به میبینم که دختر زیبا و مهربونم دلش برای پدرش تنگ شده و به دیدنم اومده <تصفيق> من همیشه دلم براتون تهیم میشه پدر ولی شما اینقدر سرتون با مملکت داری و دیدار با بزراب و صفر و گرمه که فرصتی برای دیدن من نداری من هرچقدر سرم گرم باشه برای دیدن تو لحظه شماری میکنم پریدخت خودت هم خوب میدونی که همه یه عشق و امید من تو زندگی تویی تو از هر کسی و هر چیزی بیشتر دوست دارم میدونم پدرجان قسم میخوارم که منم همین حساس و نسبت به شما دارم بسیار خوب از تعارف بگذاریم حتما خواسته داری که به دیدنم اومده درسته؟ بله پدر اومدم ازتون اجازه بگیرم همراه دوتا اشکنیزان به گردش برم گردش؟ تو این هوای سر؟ هوا که هنوز خیلی سرد نشده پدرجان درزم اگه هبام سرد شد من لباس گرم میپوشم هر وقت میخوای ازم دور بشی حس بدی دارم پریدخت نمیشه به جایی اینکه از قصر بیرون بری همینجا تو همین قصر با کنیزانت یه جشن باش و کوه برگذار کنی <تصفيق> پدرتون من تمام سال توی قصرم کنار شما و البته کنار کنیزان گایی وقتا دلم میخواد از غصب برم بیرون دلم میخواد مردم عادی رو ببینم و باشون حرف بزنم دلم میخواد شکار کنم از سواری کنم تو دشت را برم بودم اینا این آرزوی بزرگیه برای من من دلم نمیخواد تو هیچ آرزوی برآورده نشدهی داشته باشی دخترام یعنی اجازه میدین من برم گردش؟ کی قراره بریم؟ اگه شما اجازه بدین فردا شرط داره. چه شرطی؟ این که قول بدی از قصر خیلی دور نشی و همه جوره مراقب خودت باشی دختران <تصفح> باشه بدر جان قول میدم و قول بدی که تا قبل از تاریک شدن هوا به قصر برگردی باشه بدر حتما بهتون قول میدم بسیار خوب فردا بعد از طلوع آفتاب همراه دوتا از کمیزانت سوار بر سه اسب بشین و به دشت برید <تصفح> بی منتظرم به قصر برگردی دخترم چش بدم؟ <تصفيق> بعد پریدخت به همراه دوتا از کنیزانش به نام گل رخ و ماهرخ راهی دشت شد. اونا بعد از یکی دو ساعت به دشت رسیدن و ساعت در دشت گردش و اسب سواری کردند تا اینکه خسته شدن و به خواب رفتن. وقتی از خواب بیدار شدن هوا تاریک شده بود. پریدخت و کنیزانش با عجله سوار بر اسب شدن و به تاخت به طرف قصر رفتن. هلین دیر شد دو شیزه پریدو امیدوارم جناب پاتشا بخواسته این تخیر من و و ملامت نکنه هی برایوان نگران نباش گلرخ من برای پدرم توصیم میدم که خوابمون برد همینا همینم باعث شد که دیر به قصف برگردیم مراقب باشین دو شیزه پریدو هوا خیلی تاریکه این اطراف در رای هست عقل خدایی نکرده با اسبتون بلغزه و تو گاز بگیر ماه رو هر ثبتی نرسیدم که گلدروخ از خانم خواستم مراقب باشه من مراقبم ماه رو فقط کاش این بال در بیاره و پرواز کنه من به پدرم گل دادم که قبل از ساریک شدن هوا به قص بر میگردیم نگران نباشید دوشیزه پری دخت اگه هوا با ما یار باشه با همین سرعت پیش بریم خیلی زود به قص می‌رسیم فهمیدورا همین باشه که تو میگی گلدروخ من همیشه Biloko دو شیزه دو خدایا خدای صدم دو شیزه پریداخت میشنوید ای خدا این چه بلایی بود سر دو شیزه پریداخت و من حتما افتاده تو درد گروه بیچاره شدیم مطمک شدیم, شدیم. چلا به باتشاه منو زنده نمیزاره. چی داره میگه محروم دارم میگم دو شیزه پریداخ افتاد تو دره داد بیداد پس بدون دوشیز پریدخت چطور برگردیم غصر؟ من که جورت نمی کنم بدون اون به غصر برگردم ماه ما رو. نا جورت نمی کنم همینجا بمونیم بمونیم شاید تونستیم دوشیز پریدخت رو پیدا کنیم ولی شاید اینجوری بلایی این سر دوشیز پریدخت بیاد شاید حیوان های وقتی رو پاره کنن اون وقت جناب پادشاه ما رو زنده به گور میکنه. می کنه محروم می کنیم. هر طور شده باید به قصر برگردیم باید حقیقتو به جناب پادشاه بگیم ای وای ای وای حتما جناب پادشاه ما رو زندانی میکنه. مارو ما رو زندانی کنه بهتر از اینه که بلای سر دوشیز پری دخت بیاد. بلنش رو بریم به قصر باید کمک بیانی تو مطمئنی کنم شک ندارم این درستر این کاره بلنش رو بریم تا این ماهروخ به تاخت به طرف قصر رفتن و با ترس و وحشت وارد قصر شدند. پادشاه که مقابل دروازه برودی قصر منتظر پریدخت بود، از دیدن گررخ و ماهرخ که به تنهایی وارد قصر شده بودن، تعجب کرد و از اونها سراغ پریدخت رو گرفت. اون دو نفرم به ناچار مجبور شدند حقیقت رو به پادشاه بگن. لا نتیه لا چیا لا نتیه لا چیا لا لا چیا لیدن استم اورزنا دینا باور کنید ما همه جوری مراقب دوشیزه پری بودیم جناب پادشا ما قصور ما نبودیم که پای اسبشون لغزید و پرت شدن توی ذره گل رو رسم میگه جناب پادشا خزب میخورم که ما حتی لزب چشم ازش پر نداشیم تا اینکه پای اسبش لغزید و داخل دره افتاد ساکت دلم نمیخواد صدای هیچ کدومتون رو بشنبم نگهبان درمالالا فوراً این دو کنیز رو بندازن را بیافتیم زود تو خدا به ما رحم کنید چناب رحم کنید نکنید تقصیل نکنید را بیافتیم ما گناهی دوشیز ولی بعد از اینکه این دو این به زندان انداختی با ده سرباز زبته و کارکشته برو به همون درهی ای که این نشونی نشونیشو وجب به وجب اون دره رو بکردیم وای به حالتون اگه نتونین دخترم رو پیدا کنیم اطاعت بشه سربرم را بیافتید باشید با را, را بیافتید روز بعد ده نفر از سربازان زبده سپاه پادشاه برای پیدا کردن پریدخت و اسبش به طرف در اطراف قصر رفتن. اما نتونستن رد و نشونی از اون پیدا کنن. اونا حتی نتونستن اسب پریدخت رو هم پیدا کنن. سربازای پادشاه خسته و ناامید به قصر برگشتن. و اما بشنویم ماجرای پریدخت رو. پری دخت و اسبش در تاریکی شب به دره سقوط کردند. در اون دره پیرزنی همراه با پسرش سام زندگی کرد. صبح زود پیرزن برای خوندن نماز از خواب بیدار شد. پسر جوان بیرون از گلبه رفت تا قدری آب برای وضوع گرفتن بیاره که دید دختر جوانی با سر و صورت خون‌آلود روی زمین افتاده. مادر! مادر! مادر! مادر چی شده سا؟ مادر چرا اینقدر سراسیه؟ یه نفر یه نفر بیرون از کلبس مادر سرسفتش خونیه مادر به گمونم مرده تو مطمئنی؟ آره مادر او یه دختر جوونه با من بیای با من بیای بیای بیای, بیای! بیای! بیای! بیا هی وای حتما از بالا به داخل این دره لعنتی سقوط کرده مادر فکر میکنی زنده هست بزار ببینم پسرم صبر کن توی ذره برو کنار آج. دختر جان دختر جان آه. صدای منو میشنوی آه. دختر جان آه. سام آه. این دختر زیبا زنده است باید ببریمش داخل کلبه نکنه جادوگر باشه هر کسی باشه فعلا به کمک ما نیاز داره بیا ببریمش داخل کلبه وگرنه یا از سرما میمیره یا حیوانای وحشی تکه پارش میکنن هجله کن پسرم کمک ببریمش داخل کلبه بیا بلندش کن درش پریدخت رو به کلبه بردن و ازش مراقبت کردن از طرفی پادشاه اعلام کرد هر کسی تونست دخترش پریدخت رو پیدا کنه یا خبری از اون به دست بیاره جایزه خوبی میگیره. مامورای پادشاه شب و روز در رهای اطراف شهر رو گشتن شاید بتونن ردی از پریدخت پیدا کنن اما هیچکس نتونست کلبه پیرزن رو که در دل دره بود پیدا کنه از طرفی پیرزن و سام هم همچنان در حال مراقبت از پریدخت دخت بودند دخترم بلند از این معجون بخور آ... بهتر شی آ... م... وجود آ... ممنونم آ... خدا رو شکر م... م... من... من کجا شما کی هستی من سامم اینم مادرم من ما ما، ما، ما شما را به یاد نمیارم آه... یعنی هیچی را به یاد نمیارم تو و از بالا سقوط کرد این دخترم تمام تن زخمی بود یه روز تموم بیهوش بودی آه... عصبت که طلب شد خدا به تو رحم کرد که تونستی زنده بمونی آه... من هیچی یادم نمیاد حتی یادم نمیاد که افتادم تو دره چی شد که افتادم تو دره؟ مهم نیست مهم اینه که الان زنده یا حالت خوبه ولی سعی کن به خاطر بیاری که کی هستی دخترم به یاد بیاری که کجا زندگی میکنی حتما خونوادت نگرانتن دخترم دخترم خونواده؟ من, من من خونواده ندارم <تصفيق> مگه میشه دختر جوونی مثل تو خونواده نداشته باشه. تو حتما یه خونوادهی داری از سکنات و جناتتم معلومه که از خونواده اسیری هستی دخترم خو فکر کن فکر بیاری کی هستی و چطور شد که این بلا سرت اومد فکر کن باشه باشه از این ماجرا گذشت در حالی که پریدخت حافظش رو از دست داده بود پادشاه هم همه سربازانش رو عجیر کرده بود تا برای پیدا کردن پریدخت دست به کار بشن حالا سپاه بزرگ پادشاه وجب به وجب خاک اون سرزمین رو زیر پا گذاشتن تا بتونن ردی از پریدخت پیدا کنن تا اینکه یکی از اونا چشمش به کلبه پیرزن میفته و به طرف کلبه میره تو هم اون کلبه این رو که من میبینم میبینی؟ آره میبینم باید بریم ببینیم تو اون کلبه چه خبره سر نترسی داری نکنه تو اون کلبه دیو و قول و پری زندگی کنن باشه مهم نیست در عوض اگه دیو و قول و پری دوشیز پری دخت و زندانی کرده باشن ما اونو نجات میدیم و پول خوبی از جناب فتشان میگیریم خب من من, من, من جالت ممی کنم از این جلوتر سر بیام ای ترسوی باشه. دهن جوری است تا خودم برم و از اون سوراخ در به داخل کلوه نگاه کنم ببینم داخل کلوه چه خبره باشه برو برو برو ای بابا از اینجا که چیزی دیده نمیشه خوبه تو چقدر خوش اقوالی مرد ببین کی تو کلمه است دوشیز پریدخت هی پیرزن ناوکار تو پسر دوشیز پریدخت دیدین و اونو به کلبه آوردین الان نشونتون میدم چی شد؟ هیچه، باید خیلی زود به دیدن پادشاه بریم تو اون کلبه چه خبره؟ دیو و پریاغول تو کلبه ساله گفتم ساکت شو باید خیلی زود به قصد بریم باید خیلی زود جناب پادشاه رو ببینیم نگهبان با عجله سوار اسب شدن و به طرف قصر به راه وقتی به قصر رسیدن نگهبانی که داخل کلبه رو دیده بود ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد و گفت که پریدوخت توسط پیرزن و پسر جوانش در کلبه زندانی شده پادشاه جایزه خوبی به نگهبان داد و چند نفر رو فرستاد تا پیرزن و پسرش رو دستگیر کنند و همراه پریدوخت به قصر بیارن مأمورای پادشاه هم به کلبه رفتن و پیرزن و پسرش رو همراه پریدخت به قصر رو بردن بگفن. بله سربنم دخترم کجاست؟ در سره خودشون هستن سربنم طبیبان در حال مداباشون هستن فوراً بگو اون پیرزن و همراه پسرش بفرستن اینجا اتفاقاً هر دوشون الان منتظر دیدار شما هستن بیارشون اطاعت بشه سربنم. اجازه بدید پیرزن و پسرش وارد قصر بشن بیا پسر اطاعت هم بیواند. شد سر برم شد تو برو اطاعت میشه در خدمت این پادشاه خب حالا دیگه کارتون به جای رسیده که دختر پادشاه مملکتون میدوزدین و تو کلبتون پنهونش میکنین دوزدی اه... کدومه جناب پادشاه من و پسرم سام در کل به زندگی میکردیم یه روز پسرم رفت از چاه آب بیاره که دید دختر شما روی زمین افتاده و زخمی شده منو پسرم از اون مراقبت کردیم تا حالش خوب بشه باور کنید منو مادرم بارها ازش پرسیدیم کیه و اسمش چیه و خونش کجاست. اما دختر شما هیچی یادش نمیومد و نتونست پیچ از سوالاتمون جواب بده دختر شما حالش خیلی بد بود جناب پادشا. اون هیچی رو به خاطر نمی آورد همین الانم هیچی یادش نیست اون حتی شمارم که پدرشی نمیشناسه. این بلاییه که تو و پسرت سرش آوردی نجوزه نه اینطور نیست باور کنین من از دختر شما مثل دختر خودم مراقبت کردم اگه ادعا میکنید که راست میگید چرا تو این مدت به ما اطلاع ندادید که این دختر تو خونتونه برای اینکه ما نمیدونستیم این دختر کیه باور کنید که میدونستیم دختر شماست همون روزی که دیدمش خودم با دستای خودم میابردمش قصر رو به شما تحویلش میدادم دارید دروغ میگید لعنتی ها وقتی افتادید زندان میفهمید دروغ گفتن به پادشاه چه آخر عاقبتی داره بگه بان بله قربان فوراً این پیر زن و پسرشو به ناسه داری با به حالشون، اگه حال دخترم خوب نشه روزه کارشونسی اتاعت بیشه سر برم را بیافتیل را بیافتیل التماس را کنید را به دستور پادشاه سام و مادرش رو به زندان انداختن از طرفی طبیبان همچنان به مداوای پریدخت مشغول بودن اما نتونستن کاری کنن تا پریدخت حافظش رو به دست بیاره تا اینکه یک روز پادشاه تصمیم گرفت به دیدن پریدخت بره به به چه اتاق زیبایی؟ چه پرده های حریری <تصفيق> پری یادت روزی رو که خیاط این پرده های زیبا رو برای اتاقت دوخت یادت چقدر خوشحال بودی؟ خیات؟ نه تو قبلش به من گفته بودی که از پرده های حریر با گل های صورتی و زرد خوشت میاد منم به خیات سفارش دادم پرده های اتاقت گل های صورتی و زرد داشته باشه من گفتم از گلگی صورتی و زرد خوشم میاد آره دخترم تو گفتی چون از بچگی این دورنگو خیلی دوست داشتی یادت نیست؟ نه یادم نیست هیچی یادم نیست اصلا اصلا شما کی هستین که اومدیم به اتاق من؟ من من پدرتم پادشاه این مملکت تو هم پری دخت تنها دختر من هستی پری دخت پری دخت دختر پاچا آره پری دخت یادت چند روز پیش به دیدنم اومدی و ازم خواستی اجازه بدم با کنیزانت به گردش بری؟ نه،, نه یادم نمیاد به تو گفتم به این شرط اجازه میدم از قصر بیرون بری که خیلی از قصر دور نشی و قبل از تاریک شدن هوا برگردی؟ من هیچی یادم نمیاد هیچی آه. ولی دخترم باید یادت بیاد باید یادت بیاد که من پدرتم یادت بیاد که تو تنها امید من تو این زندگی بودی و هستی یادت بیاد که من غیر از تو کسی رو ندارم باید یادت بیاد که من چقدر دوستت دارم و حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم اح... منو ببخشید آقا من من شما رو نمیشناسم. لعنت، از اتاق من بریم بیرون. بریم بیرون. من شما رو نمیشناسم. مش تقصیر اون پیرزن لعنتی و پسرشه آه. پیرزن؟ آه. کدوم پیرزن؟ همون پیرزنی که کلباش در دراست. همونی که با پسرش چند روز تو رو تو کلبشون زندانی کردن و اجازه ندادن از اون کلبه لعنتی بیای بیرون. همون پیرزنی که با جادوگری باعث شد تو همه چیزو فراموش کنی و هیچکیو به خاطر پیرزن؟ یادم نمیاد یادم نمیاد همین امروز دستور میدم پسر اون پیرزن جادوگر رو تو میدون شهر گردن بزنن گردن بزنن؟ به چه جرمی؟ به جرم اینکه این بلا رو سرت آوردن به جرم اینکه کاری کردن تا تو هیچی رو به خاطر نیاری نگهبان بان بله سر بارم زهر پسر اون پیرزن و تو میدون اصلی شار گردن بزنین تا درسی بشه برای تمام جادوگران. گرران اعتات بشه, بشه سربرم. به دستور پادشاه نگهبان سراغ سام و مادرش رفت و به اونا خبر داد که پادشاه دستور داده فردا زور سام رو در میدان اصلی شهر گردن بزنن. سام و مادرش با شنیدن این خبر بحشت زده شدن. پیرزن به نگهبان التماس کرد که اجازه بده یک بار دیگه پریدخت رو ببینه. نگهبان که دلش به حال پیرزن سوخته بود پیش پادشاه رفت و گفت که پیرزن میخواد پریدخت رو ببینه. پادشاه اولش مخالفت کرد ولی بعد با خودش فکر کرد شاید این پیرزن بتونه از ترس کاری بکنه که پریدخت حافظش رو به دست بیاره به همین دلیل هم اجازه داد پیرزن به دیدن پریدخت بره چقدر خوشحالم که ببینم حالت بهتر شده دخترم منو یادته منم مادر سا. همون که یه گلبه کوچیک داره و تو چند روز مهمون کلبش بودی کلبه؟ کدوم کلبه؟ یادته با اسبت افتادی وسط دره یادته سر و صورتت زخمی بود و سام وقتی بیهوش بودی تو رو پیدا کرد سام؟ من سامو نمیشنستم خوب فکر کن دخترم فردا قرار سامو به دستور پدرت گردن بزرد فقط تویی که میتونی سام من از مرگ نجات بدی من؟ آره فقط تو میدونی که من رو سام بهت کمک کردیم تا حالت زودتر خوب بشه فقط تو میدونی که تو اون چند روزی که تو کل به پیش ما بودی چقدر ازت مراقبت کردی من زخمی شده بودم آره یه شب سرد با اسبت افتادی وسط دره بیهوش شدی به تلف شد یادت نیست؟ نه من هیچی یادم نیست داختر دخترم، تو رو خدا کمکیمون کن پری دخت بس دستاتو بموزم من اصاب گناهی نکردیم جز اینکه میخواستیم تو رو نجات بدیم نه ازیتت کردیم نه بهت بی احترامی کردیم تو رو خدا التوازت میکنم به پدرت بگو که ما جادوگر نیستیم و این بلا رو سرت نیوردیم پدرم کیه؟ پدرت جناب پادشاه اون فکر میکنه منو و پسرم کاری کردیم که تو هیچی رو به یاد نمیاری برای همینم میخواد فردا و بسط میدون شهر گردن بزنه تو رو خدا کمک کن من یه مادرم نظر بچیامو گردن بزده. من تو این دنیا فقط همیه یه بچه تو رو خدا کمکم کن. کمکم کن. کمک کن کمک کن زن ساعتها به پریدخت التماس کرد که اجازه نده پادشاه سام رو گردن بزنه اما پریدخت هیچ چیز رو به یاد نمی آورد. فردای اون روز معمورای پادشاه سام رو به میدان اصلی شهر بردن تا اونو گردن بزنن باور کنید من و مادرم میخواستی به اون دختر کمک کنیم جناب پادشاه ساکت چیزی رو نمونده میتونی آخرین وسیعتات رو به مادرت جناب پادشاه نه مادر جان تو رو خدا به پسرم رحم کنی آه. اون گناهی نکرده اون فقط میخواست به یه دختر زخمی کمک کنی این حرفان رو به جناب پادشاه بگو بیرزن فقط جناب پادشاه میتونه پسرتون از مرگ نجات بده. جناب پادشاه التماستتو بکنم به من مادر رفت کنی اجازه ندید پسرم و گردن بزنم ساکت شا پیرزن آه، ساکت جا باید این پسر به سزای عملش برسونم تا عبرتی بشه برای کسانی که تو این مملکت بنای شرارت رو میذارن کدوم شرارت؟ محض رضای خدا یه بار از دخترتون بپرسین ببینید در طرف من یا مادرم ازت و آذار دیده؟ دختر من وقتی از این قصب بیرون رفت سالم بود مثل بلبل حرف می‌زنه. اما حالا چی؟ فقط به همه نگاه میکنه و میگه رو به یاد نمیاره. <متصف> نبایدم به یاد بیاره وقتی چند ده متر از در سقوط کرد. ضربه سختی به سرش خورده. برای همینم یادش نمیاد کیه و چه بلایی سرش اومده. اینا همش کیا <متصف> <متصف> شما شماها این بلا رو سر دختر من آوردید. یک بان کردن این بزرگ بزرگ اتاقت میشه سر برم آه. برای مرگ آماده باش. تو اینجا چی کار میکنی دخترم؟ من من خیلی فکر کردم پدر. پدر یعنی یعنی تو یادت اومد که من پدرت پدر. یادم <متنجه> اومد که شما پدرم هستی. یادم اومد که چند روز پیش اومدم پیشتونو ازتون اجازه گرفتم که برم گردش درسته یادم اومد که اون شب وقتی داشتیم به قصب برمیگشتیم اسبم عصبم و افتادم ته دره اوه. اوه. و بعدش این پیر زن و پسرش تو رو تو کلبه مخفی کردم درسته؟ نه پدر اتفاقا برعکس سامو مادرش من از من نجات دادن اگه اون حالا برده بودم. چی داری میگی پری دخت من بیهوش شده بودم بدم وقتی به هوش اومدم دیدم که مادر سام مثل یه مادر داره از ازم مراقبت میکنه و روی زخمان مرهم میذاره این پیرزن؟ به خداوندی خدا اگه دختر خودم من هم بود همینطوری ازش مراقبت میکرد. دیدی جناب پادشاه؟ دیدی؟ حالا باورتون شد من و مادرم جز حقیقت چیزی نگفتی پدر خواهش میکنم از کشتن سام بگذرید اون گناهی نداره تنها گناهی شدی که به من کمک کرد تا از مرگ نجاز پیدا کنم همین التماستون میکنم جناب پاچو التماستون میکنم به پسرم رحم کنید اون گناهی نکرده که مجازاتش مرگ باشه التماستون میکنم منم من مادر باشه با صحبتهای پریدوخت پادشاه متوجه شد که سام و مادرش گناهی ندارند. به همین دلیلم از گردن زدن سام صرف نظر کرد چند روز بعد سام به خاستگاری پریدوخت رفت و پریدوخت هم که به اون علاقه مند شده بود به خاستگاریش پاسخ مثبت داد و با هم ازدواج کردن و همه چیز به خیر و خوشی تموم شد بله دوستان، اینم از افسانه پریدخت گم شده که افثانه ای ایرانیه و از کتاب افسانه های ایرانی تعلیف محمد قاسمزاده انتخاب کردیم در این افسانه مثل تمامی افسانه ها درس و حکمتی هست اونم اینه که ماه هیچ وقت زیر ابر نمیمونه و حقیقت یک روزی برای همه آشکار میشه امیدوارم از این افسانه ایرانی خوشتون اومده باشه پریدخت گم شده تنظیم برای رادیو سهیلا خدا داده راوی شهیندخت نجف زده بازیگران احمد گنجی نگین خاج نصیر معصومه عزیز محمدی راضیه مومیبند کامیار محبی امین بختیاری محمد رضا قلمبر فریبا متخصص، کارگردان بهرام سرvarی نژاد، افکتور نازنین حسمنپو، صدابردار حیدر صفداری. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگیه افسون زندگیتون. دل نشین و مانا. تا افسانه دیگر بدر